در جت داش صفحه 65 در این هنگام صدای شهریار به گوش رسید که می گفت تصور نمی کنم سرگذشت این پیرمرد بتواند بهتر از سرگذشت دو پیرمرد قبلی باشد شاهزاد لب به سخن گشود و گفت ای شهریار جوانبخت من نمیتوانم شرح سرگذشت سومی را برایتان بازگو کنم زیرا تفصیل آن را نمی دانم ولی به طور اجمال می‌دارم که برای پیرمرد ثومی ماجراهای حیرت انگیز فراوانی اتفاق افتاد که شنیدن آن همه حوادث گوناگون و جالب تحسین جن را برانگیخت و در نتیجه با ابراز رضایت و خوشنودی از شنیدن آنها باقیمانده کیفر بازرگان را هم بخشید و سرانجام مرد بازرگان از کیفر مشقت بار مرد نجات یافت. آنگاه جن خطاب به بازرگان اظهار داشت تو زندگی خود را مرهون این سه نفر هستی و اگر آنها این های شنیدنی و شگفت‌آور را برایم تعریف نکرده بودند، تو اکنون زنده نبودی. چند تا از گفتن این سخن، تنوره کشید و در آسمان ناپدید شد. بازگاو هم که احساس می‌کرد با کمک آن سپیر مرد اوم دوباره‌ای به دست آورده، بسیار شادمان گردید و به طور کامل و شایسته‌ای از آن سه نفر سپاسگزاری نمود. به هر از آنها گفت که زندگی خود را مدیون هر کدام از آنها می باشد هم از این که توانسته بودند با تدبیر خود خدمتی به بازرگان که مرد بیگناه و نیکرداری بود به نمایند و بیگناهی را از مرگ رهایی دهند دهن در شادی و شعف بودند بعد از سپاسگذاری از یکدیگر خداحافظی نمودند و هر کدام راه خود را در پیش گرفتند مرد بازرگان هم به شهر خود بازگشت و نزد زن و فرزندان خود رفت و بقیه ای ایام زندگی را به شادی و آرامش و فراغت با خانواده خود سپری کرد. شهرنا که گفتارش به اینجا رسید رو به شهریار کرد و گفت آن چرا که تا این ساعت برای تان شهر دادم در مقابل سر مرد ماهیگیر ناچیز و بی اهمیت است. دیارار که دید شهریار سخن نمیگوید و تردید دارد به صدا و گفت خواهر تا طلوع روز هنوز زمانی مانده. این مدت را برای ما مرد ماهیگیر را بگو. البته مشروط بر اینکه سرور من حضرت سلطان موافقت فرمویند. سلطان موافقت خود را بیان کرد و شخصات هم داستان را بدین گناه آغاز کرد. سرگذشت مرد ماهیگیر در روز کار قدیم مرد ماهیگیر که و فقیری زندگی می کرد که به سختی می از طریق ماهیگیری لقمنانی به دست آورد و خانواده خود را سیر کند. همسر و فرزندان او غالبا غذای کافی برای سیر شدن شکمشان نداشتند ماهیگیر فقیر و فرسوده هر روز بامداد به دریا میرفت و تا غروب آفتاب چهار بار تول ماهیگیری خود را در دریا پهن میکرد و هنگام غروب با بدنی خسته و كوفته راه خانهاش را در پیش میگرفت در یكی از روزها پس از سحر هنگامی که ماه هنوز در آسمان دیده میشد به کنار دریا آمد و در زیر نور ماه لباس كهنه خود را درآورد و گوشه گذاشت و تور ماهی را در سطح آب هنگ کرد وقتی خواست تور را جمع کند و آن را به خشکی بکشاند احساس کرد که تور خیلی سنگین شده است پیش خود فکر کرد که ماهی بسیاری به تور افتادند و خیلی شاد و خوشحال شد و به هر نحوی بود با سختی دشواری تور را به ساحل کشانید و آن را که باز کرد دید لاشه اولاقی در تور افتاده است بسیار ناراحت شد شصاب که احساس که سپیده صبح در حال دمیدن است لب از گفتار فرو برشت دینانظر که با بی آماده شنیدن بقیه داستان بود بی اختیار به صدا و گفت باید بگویم که آغاز این داستان که بسیار جذاب بود و از حالا پیش بینی میکنم که پایان آن همچنان جالب و شیرین خواهد بود در این وقت صاب گفت که داستان مرد ماهیگیر حیرت حرت انگیزترین داستان هاست و چنانچه شهریار اجازه فرمایند بقیه آن را شب برای تان شرده هم شهریان هم که بسیار مشتاق به شنیدن سرگذشت ماهیگیر بود کشتن شهرزاد را یک شب دیگر هم به تأخیر انداخت شب نهم. دینارزاد مانند روزهای دیگر در نزدیکی‌های صبح خواهر شهرزاد را صدا زد و گفت خواهر اگر بیداری از تو میخواهم که داستان زندگی ماهیگیر را دنبال کنی شهرزاد هم در همان لحظه گفت، چنانچه حضرت سلطان اجازه فرمایند حرفی ندارم شهریار هم اجازه داد و شهرزاد هم دو مالی داستان را بدین گونه شهر داد ای شهریار توانا ماهیگی که از بدشانسهٔ خود ناخشنود بود و پارگیهایی در تور ماهیگیریش در اثر سنگینی وزن لاشه علاق پدید آمده بود به دوختن آن مشغول شد و آن را وصله کرد و برای بار دوم تور را به دریا انداخت و پس از اندک زمانی احساس کرد که تور خیلی سنگین شده که ماهی های بسیاری را به دام انداخته است. ماهی که با تمام نیروی خود سعی کرد تور را از آب بیرون کشد وقتی تور را باز کرد سبدی را در تور دید که انباشته از گلوشن فراوان است بسیار ناراحت شد و با لحن قطوری از سخت بد خود شکایت کرد و با خود گفت: ای سر نوشت؟ چرا این با من ناسازگاری من که ایمان به خدا دارم و بنده شگذاری هستم من که با درستی راستکرداری زحمت میکشم؟ و برای لقمه اینان حلال به ماهیگیری وقت میگذرانم و آن وقت تو با من بد تا میکنی و بیمهری نشان می‌دهی. تو می دانی که من تنها از این راه امرار معاش میکنم و درآمد دیگری ندارم و روزی من از دل دریا به دست میآید آن هم به اندازه است که خانوادهام گرسنگی خود را برطرف سازند شاید شكوهٔ من از تو درست نباشد زیرا ممکن است تا پشتیبان و نگهدار اشخاص درستگار و شریف نباشی و بخواهی آنها را آزار دهی و رنج آنها تو را خوش سازد. شاید تو میل داری بدندیشان و گناهکاران را بر پرهیزکاران کاران ترجیح دهی. وقتی ماهیگیر گیر شکل و شکایت را به پایان رسانید و آزاردگی زیاد سبت را به گوشه پرتاب کرد و در حال که طور خود را تمیز کرده بود برای بار سوم آن را در, در دریا گسترانید. این بار هم مشتی سنگیزه و صدف نصیبش شد. کسی قادر نیست ناراحتی و دلازردگی ماهیگیر را در این لحظه تشریح کند خشم اون در این موقع به مرز جنون رسیده بود اما همین که سپیده صبح کم کم ظاهر می شد، به نماز پرداخت پس از نماز دعای خود را چنین آغاز کرد خدایا تو می من روزی چهار بار تور خود را به دریا می اندازم چهار سه بار آن را به دریا انداخته و چیزی به دست نیاوردم. این بار از تو می خواهم که من امید ن و همانگونه که به حضرت موسی عنایت کردی با من هم مدارا کنی ماهیگی سخنان را گفت و تور را با تمام نیرو به دریا انداخ و بعد از اندک زمانی تور را که بسیار سنگین شده بود با دشواری فراوان بیرون کشید ولی به جای ماهی صندوقچه مسی یافت که یک روی آن با صبح مح شده بود و اثر مح بر روی صبح نمایان بود ماهیگی خوشحال شده با خود گفت این صندقچه را به ریختهگری که اشرای فلزی را در کور زب می ذب می میفروشم و با پولی که به دست خواهم آورد مقداری گندم خواهم خرید ماهیگیر هر چهار سمت صندقچه را خوب نگاه کرد و آن را تکان داد تا ببیند چیزی در آن است یا نه هیچ صدایی از درون صندوقچه به گوشش نرسید چون در روی یک سمت صندوقچه اثر سر مهر سربی دیده میشد با خود فکر کرد باید راز مهمی را در آن پنهان کرده باشند ماهیگیر چاقوی خود را از جیب درآورد و به راحتی در صندوقچ را گشود و آن را از همان سمت روی ماسه های کنار دریا وارونه خواباند. مدتی با دقت به آن نگاه کرد و دید دود غلیزی از آن خارج می شود به طوری که مجبور شد چند قدم خود را از آن دور کند. این دود به آسمان بلند شد و آنقدر بالا رفت تا به اابها رسید و به صورت مه قلیزی در آمد. ماهیگیر از حیرت چشمانش گرد شده بود و همانطور به این منظره خیره نگاه میکرد، همین که تمام دودها از صندوق خارج شد، دوباره به همدیگر پیوست و هیکل حیولایی که دو برابر بزرگترین قول‌ها بود، در مقابل ماهیگیر پدیدار شد. ماهیگیر بیچاره از مشاهده این صحنه وحشت‌انگیز به قدری ترسیده بود که قادر نشد برای فرار از خطر یک قدم هم به عقب گذارد. این حیولا به محض پدیدار شدن، مرتبا حضرت سلیمان را صدا میزد. و می گفت یا حضرت سلیمان یا حضرت سلیمان ای پیانبر بزرگوار قول میدهم دهم که دیگر از اوامر از سر نکنم مرا ببخش خطا کردم که فرمانت را اطاعت نکردم از این پس هرگز نافرمانی نخواهم کرد چه اصاب که به اینجا رسید و می دید که سپیده صبح به زودی فرا رسد گفتارش را به پایان آورد دینارزاد گفت خواهر متشکرم. تو آدم خوشخولی هستی و هیچکس را مثل تو ندیدم که این به ودی خود وفا کند شهرسا گفت خواهر این داستان از داستان قبلی خیلی پرحیجان جانتر و شگفت آورتر است و هنوز قسمت های جالب آن را تعریف نکرده و و چنانچه سرور من شهریار بزرگوار اجازه فرمایند بقیه داستان را فردا نقل خواهم کرد شهریار که خود شخصا مجذوب شنیدن این قصه بود برای آن که از لذت شنیدن باقی داستان محروم نشود، حاضر شد که یک روز دیگر هم به شهرزاد فرصت بدهد و شتاب در کشتن او نکند. شب دهام. پس از گذشتن وقت سحر و یک ساعت به طلو آفتاب، دینارزاد خواهر خود شهرزاد را صدا زد و خواهش کرد دنباله قصه پیرمرد ماهیگیر را نقل کند. و شهریان هم که منتظر آن بود، بلافاصله گفت بقیه قصه را تعریف کن تا بدانیم قول با حضرت سلیمان چه ارتباطی داشته است؟ شهستات چنین ادامه داد ماهیگی که تا حدودی از بود و حیرت خارج شده بود و به حال عادی برگشته بود به قول گفت ای موجود مقرور چرا حضرت سلیمان را صدا میزنی 1800 سال است که از مرگ او میگذرد و داستان رفتن تو در داخل این صندوق چگونه است؟ قول با حالتی خشمگین به ماهیگی نگاهی کرد و گفت تو حق نداری به من بی کنی و مرا موجود مقرور خطاب کنی، قبل از آن که تو را بکشم باید از روی ادب و احترام با من سخن بگویی. تنها لطفی که به تو خواهم کرد این است که به تو اختیار می هم خودت بگویی چگونه جانت را بگیرم و الا تخیر در کشتن تو نخواهم کرد. ماهیگیست سخنان قول را شنید گفت: من تو را از این صندوق که در آن زندانی بودی خلاص کردم و آزادی و آرامش بخشیدم روانی است که نجاتدهحملی خود را پاداش بد دهی زیرا سزای نیکی باید نیکی باشد نبدی و علاوه من که درباره تو عمل ناپسندی نکردم اون در کاتاق ماهیگیر گفت درست میگویی ولی در هر حال باید تو را بکشم و دلیل آن را زن شرح حال خودم همکنون نقم میکنم درست گوشهایت را باز کن تا بدانی چرا باید تو را بکشم من یکی از قولهایی هستم که نسبت به فرمان و اراده حضرت سلیمان نافرمانی نشان دادم. سرکشی کردم. و در واقع از فرمان خداوند سرپیچی نمودم، همه گوش به فرمان حضرت سلیمان بودند و فقط من و قول دیگری که نامش سکر بود اطاعت او را گردن ننهالیم و به چنین گناهی شدیم سلیمان که در این حال پادشاه با عظمتی بود آسف و زیر ارزم خود را به دنبال من فرستاد و او هم مرا دستگیر کرد و دست بسته به حضور سلطان بزرگ برد و و در برابر تخت سلطنت او حاضر شدم آنگاه سلیمان به من امر کرد که دست از نافرمانی بردارم و اطاعت او را مانند دیگران برگردن گیرم من هم سخت مخالفت کردم و از فرمان او سرپیچی نمودم و گفتم من نفرت و انزجار تو را نسبت به خود بیشتر خری دارم تا آنکه با تو پیمان ببندم و دست فرمان برداری و اطاعت به سوی تو دراز کنم حضرت سلیمان از من رنجید و مرا در این صندوق زندانی ساخت و برای آنکه مطمئن شود کسی این صندوق را نخواهد گشود، مهر سربی خود را که نام خدا رویش حک شده بود، بر در صندوق تسبانید و سپس آن را به یکی از قول‌ها داد و فرمان داد که صندوق را به دریا اندازد. او هم امر سلیمان را اجرا کرد و من بیچاره از آن زمان تا حال در این صندوق زندانی بودم. در طول صد سال اول سوگند یاد کردند که چنانچه کسی مرا قبل از پایان صد سال اول از این زندان تنگ و تاریک رهایی بخشد، او را از مال دنیا بی نیاز کنم، تا فرزندان و نسلهای بعدی او را هم بی نیاز کنم، اما یک قرن گذشت و من همچنان در این صندوق زندانی بودم. در مدت 100 سال دوم با خود عهد کردم، چنانچه کسی قبل از پایان دومین قرن، مرا از این زندان رهایی بخشد، تمام گنجهای دنیا را در اختیار او گذارم اما در پایان 100 سال دوم هم کسی مرا آزاد نساخت. در مدت صد سال سوم با خود عهد گردم چنانچه کسی مرا از این صندوق لعنتی بیرون آورد و آزادم کند او را پادشاه توانه و پرقدرتی سازم و با حضور پنهانی خودم در نزد پادشاه هر روز خواسته او را برآورده سازم اما صد سال سوم هم مانند دویس سال قبلی سپری شد بدون آنکه کسی مرا آزاد کند سرانجام وقتی مریوسو و درمانده شدم با خودم عهد کردم اگر بعد از این مدت طولانی هرکس مرا آزاد سازد چون دیر به سراغم آمده است او را به قصد برسانم و هرگز بر او رحم نکنم و کمترین ترین در مجازاتش ندهم جز آن که انتخاب نحوه کشتر را در اختیارش بگذارم بنابر چون تو هم امروز مرا از این صندوق نجات دادی ناگزیرم عهد خود را وفا کنم پیرمرد ماهیگیر که از سخنان قور شدیدن ترسیده بود برنگران جان خود بود گفت عجب آدم بدبختی هستم که با وجود این خدمت بزرگ به تو باید پاداشم مرگ باشد تصمیم تو با هیچ منطقی درست در نمیآید من به تو خوبی کرده ام و تو مرا میخواهی به قتل برسانی در حالی که من تو را در صندوق زندانی نکردم بیا و مرا ببخش و از خود را نادیده بگیر خداوند بزرگ به تو پاداش نیکو دهد و تو را از حوادث محفوظ نگه دارد. باست هم همون جواب را داد و گفت حج به قتل تو از قبل صادر شده است و هیچ چیز نمیتواند جلوی آن را بگیرد تو فقط میتوانی بگویی به چه طریق تو را بکشم ماهیگیر هرچه التماس کرد قول راضی نشد و چون دید که این سخنان در قول اصلی ندارد به او گفت مگر نشنیده ای که گفتند اگر کسی خوبی را با بدی پاسخته هد آقابت خوشی در انتظار او نخواهد بود من در درستی این گفتار تردید داشتم ولی تجربه زندگی به من ثابت کرد که این گفته بسیار درست است. قوم در پاسخ پیرمرد گفت: بیهوده سعی نکن مرا از عهد خود منصرف سازی. این سخنان تو کمترین اثری ندارد و بیش از این هم مرا معطر نکن. آماده باش که باید کشته شوی. فقط بگو چگونه میخواهی کشته بشوی؟ پیرمرد ماهیگیر که حس کرد مرگ او حتمی فکر خود را به کار انداخت. و چاره اندیشید و آنگاه رو به قول کرد و گفت حال که سرنوشت چنین حکم می کند چاره جز تسلیم ندارم و هیچ کس نمی تواند از تقدیر فرار کند ولی اینک قرار است خواست خداوند در من اجرا شود به نام همه خداوندی که نامش بر روی مهر صندوقچه نمایان بود تو را سوگر می دهم در مقابل سوالی که از تو دارم جوابش را بر اساس راستی و درستی بدهی. اون که خود را در برابر عظمت نام خداوند عالم می دید و میدانست که جز حقیقت پاسخی نمیتواند تواند بدهد خود لرزید و گفت هرچه می خواهی به پرس. من حقیقت را خواهم گفت ولی عجله کن که چیزی به فرارسیدن سپیده ی صبح نداریم در این هنگام دینارزاد صدا زد خواهر، هر قد که بیشتر می بیشتر بر حیرت و حیجان ما می افضایی شهرزاد در پاسخ شهریار بزرگوار سمت سروری بر من دارند به من اجازه دهند بقیه داستان را دنبال خواهم کرد شهریار که برای شنیدن بقیه داستان بیتاب بود و نمی توانست پایان آن را نشود باز هم یک روز دیگر کشتن شهرزاد را به تأخیر انداخت شب یازدهم، هم و شهرزاد این شب را مانند شبهای گذشته گذراندند و چون صبح نزدیک شد دین از خواهر خود خواهش کرد تم یه داستان ناتمام ماهیگیر را ادامه دهد. شاهزاد هم با اجازه سلطان چنین شهر داد. قول که سوگند خورده بود حقیقت را به مند ماهیگیر بگوید، منتظر شنیدن سخن ماهیگیر شد. ماهیگیر از او پرسید: میخواهم بدانم که تو حقیقتاً در درون بوده ای و از آن بیرون آمده ای قوم جواب داد: به خدا سوگند که من در صندوقچه بودم و این حقیقت محض است. ماهیگیر جواب داد: واقعا برای من مشکل است قبول کنم که تو در داخل این صندوق بوده باشی. آن هم با این هیکل بزرگ، حتی یک پای تو هم در این صندوق جا نمیگیرد آن وقت چطور مدعی میشوی که صندوق تو را در خود جای داده است؟ اون پاسخ داد: من سوگن می خورم که درون همین صندوق بودم و تو خودت آن را گشودی و من بیرون آمدم. چطور با وجودی که به خدا سوگن می می‌خورم، باز هم حرفم را باور نداری؟ ماهیگی گفت: حقیقتش رو بخواهی تا با چشمانم نبینم که درون این صندوق نروی نمیتوانم حرفت را قبول کنم و چه مدعی هستی که قبلا در درون صندوق رفتیی پس حالا هم باید بتوانی ناگه ها قول شد و به صورت دود درآمد و مانند حالت اول این دود خود را به سوی دریا کشانید و بعد جمع شد و به آهستگی با حرکت متناسبی وارد صندوق گردید به طوری که از آن دود دیگر اثری در خارج از صندوق دیده نمیشد و بلافاصله صدایی از درون صندوق به گوش رسید که می‌گفت ای ماهیگیری که حرف‌های مرا باور نمی‌کردی اینک می‌بینی که در درون صندوق هستم آیا هنوز هم تردید داری ماهیگیر بیدرنگ در سربی صندوق را روی آن گذاشت و آن را محکم بست و به قول گفت حالا نوبت من است که از تو بپرسم چگونه و به چه طریق میل دادی تو را بکشم اما نه بهتران است که تو را به دریا پرتاب کنم تا به ته دریا بروی و بعد خودم در کنار دریا خانهای بران کنم و در اینجا به هر ماهیگیری که تور خود را به آب میاندازد، بگویم اگر صندوقی در تور شما افتاد دوباره آن را به دریا اندازید زیرا قولی در این صندوق است که با خود سوگند یاد کرده که, هر که او را از این صندوق بیرون آورد بکشد. قول از سخنان ماهیگیر خشمین شد و بسیار سعی خود را از صندوق خارج کنند. ولی نتوانست چون مهر حضرت سلیمان روی در آن موجود بود و با وجود آن محال بود که بتواند خودش را از آن بیرون آورد او که فهمید اختیار او در دست ماهیگیر است صلاح در این دید که خشونت و عصبانیت را کنار بگذارد آنگاه قول به قصد دلجویی با صدای دوستانه گفت ای ماهیگیر آنچرا که من به تو گفتم مزاه و شوخی بود تو نمی بایستی آن را جدی میگرفتی.» ماهیگی گفت ای قول بزرگ تو تا لحظه پیش تواناترین قول بودی ولی اکنون ناتوانترین قول تو باید مطیع من باشی زیرا در وضع موجود از تو هیچ کاری ساخته نیست و تو خنان ریاکارانه کمترین اثری در من ندارد تو باید حتما در اعماق دریا مدفون شوی تو اگر به قول خودت مدت سقرن تمام در درون صندوق و در عمق دریا به سربرده ای ای ندارد تا قیامت در این صندوق و در ته دریا زندگی کنی. مرد ماهیگیر ادامه داد، من به تو التماس کردم که من بیگناهم، مرا نکش و بگذار دنبال کار خود بروم. من, من تو را آزاد کردم و به چنین خدمتی خوبی کردن است، نبدی کردن و در مقابل درخواست و التماس من اعتناعی نکردی و خواهش مرا رد کردی. حالا من هم با تو همین کار را میکنم. همچنان به اعتمادهای خود ادامه بیداد ولی ماهیگیر اعتنایی به آن نداشت. قول خواهش میکرد و میگفت ای ماهیگیر مرا آزاد کن به تو قول میدهم پس از آزاد شدن در خدمت تو باشم و هر ای داشته باشی براورده سازم. ماهیگیر جواب داد تو موجود قابل اعتمادی نیستی و نمیتوان به تو اعتماد کرد اگر من به تو اطمینان کنم جانم را به خطر انداختم. و تا این درجه احمق نیستم که قول موجود خیانتگاری چون تو را قبول کنم اگر تو را آزاد کنم تو با من همون گونه رفتار خواهی کرد که پادشاه یونان با بزرگترین پزشک زمان خود پزشک دوبان رفتار کرد قول پرسید پادشاه یونان با پزشک دوبان چگونه رفتار کرد؟ ماهیگیر داستان را چنین آغاز کرد؟ در زمان قدیم در بخش از خاک ایران که زومان نامیده شد پادشاهی بود که رعایایش همگی یونانی تبار بودند این پادشاه مبتلا به بیماری برست شد و بدنش از لکه سفیدی پوشیده شده بود و او را به شکل زشتی درآورده بود همه پزشکان مملکت از درمان شاه آجز ماندن تا اینکه پزشکی به نام دوبان به نزد شاه بار یافت دوبان پزشک دانا و آگاهی بود که از دانش پزشکی بهره فراوان داشت و خواست گیاهان دارویی و درمان بیماران را با داروهای گیاهی به خوبی می‌دانست و در فلسفه و حکمت نیز سرآمد روزگار خود بود این پزشکی آقا آگاه کتاب‌های پزشکی دانشمندان یونان و ایران باستان و کتاب‌های را هم که پزشکان نامدار پیشین از کلیه ملل از جمله سوریه و مصر هم نوشته بودند را خوانده بود و دستورهای پزشکی در آن کتاب‌ها را در مورد بیماران به کار برده بود و تجربه فراوان مفیدی در درمان دردها داشت این که مشهور شنید پادشاه بیماری سختی دارد که تمام پزشکان از درمان آن ناتوانند پزشک دو خود را آماده کرد و به دربار شاه راف یافت و به نزد شاه آمده گفت من میدانم که همهی پزشکان شهر از درمان بیماری شما عاجزان اما چنانچه پادشاه افتخار خدمتگذاری به من دهند من با شیوه ی پزشکی خودم و با داروهای گیاهی شما را معالجه می کنم. شاه که به سخنان او گوش میکرد گفت ای پزشک دانا اگر تو به که سالت مرا درمان کنی، من تو و هفت نسل بعد از تو را از مال دنیا بی نیاز می کنم. علاوه آن تو را از یاران و دوستان نزدیک خود می نمایم و مقام بزرگی در دربار من پیدا خواهی کرد. آیا به من می دهی که بدون آن که دارویی و یا نوشابهی به من بخورانی بیماری لک و مرا از بین بری؟ به طوری که هیچ آثاری در بدنم باقی نماند؟ که تشکتانش من پاسخ داد آری. من به پادشاه اطمینان می‌دهم که بیماری شما را درمان کنم به طوری که اثری از آن باقی نماند و به خواست پروردگار فردا درمان شما را آغاز می‌کنم. پزشک به خانه آمد و شروع به ساختن چوگانی برای پادشاه کرد و آن را به ترتیبی درست کرد که داخل چوگان را خالی نگه داشت و در دسته چوگان که خالی بود داروی مرد نظرش را جای داد. زمنا برای چوگانی که ساخته بود گویی هم درست کرد که کاملا مناسب آن چوگان و اجرای تدویرش بود روز بعد پزشک به حضور شاه آمد و زمین را بوسید و گوی و توگان را به شاه ارائه داد سخن شهرساد که به اینجا رسید چون دید که صبح نزدیک است به خواهرش کرد گفت در صورتی که شهریار سرور من اجازه فرماید و من زنده بمانم وقایه بسیار شیرین و حیجان را فردا خواهم گفت شهریار هم که مانند دینارزاد برای شنیدن سرگذشت این پزشک دانشمند بیقرار بود دستوری برای کشتن شهرزاد به اعظم نداد شب دوازدهم شب دوازدهم فرا رسید و سهرگاهان هم گذشت و صبح نزدیک میشد که دینارزاد در همان وقت همیشگی صدا زد خواهر تو گفتی که بقیه داستان شنیدنی و پرحیجان شاه یونانی تبار را برای ما خواهی گفت شخصا پاسخ داد با کمال میل وعده خدا وفا میکنم آنگاه چنین ادامه داد شهریار بزرگوار مرد ماهیگیر که خاطرش آسوده بود او را با تدبیر خود دوباره به داخل صندوق برگردانده و او را زندانی کرده است و حالا دیگر خطری او را تهدید نمی کند جملوی مطلبی را که برای او تعریف می کرد به اینجا رسانید پزشک دوبان برخاست و بعد از آنکه دو دست را بر زانو گذاشت و روی زمین کمر را خم کرد به عرض پادشاه رسانید که برای درمان یافتن بیماریتان بر اسب سوار شوید و به میدان چوگان بازی بروید وقتی شاه طبق خواستهٔ پزشک دوبان به میدان چوگان وارد شد در همان لحظه هم دوبان خود را به آنجا رسانید و چوگانی را که خودش ساخته بود به شاه داد و اظهار داشت خواهش دارم با این چوگان و این گوی به بازی چوگان بپردازید و تا آنجا که توانایی و نیروی شما اجازه میدهد با شدت و سرعت به بازی ادامه دهید و با سرعت اسب تازید و چوغان بازی کنید تا آنجا که حس کنید دست ها و بدنتان تان خیص عرق شده و هنگامی که دارویی را که من در دسته چوغان جای داده ام بر اثر حرارت دست شما گرم شود در سراسر بدن شما نفوذ می کند و خاصیت خود را می و همین که به قسم مراجعت کنید فوراً به گرما بروید و بدنتان را خوب بشویید. بذا فرمان دهید یک نفر هم کاملا شما را مالیش بدهد آنگاه وارد بستر شده و بخوابید فردا صبح بعد از بیدار شدن خواهید که کاملا شفا یافته و اثری از این بیماری در بدنتان وجود ندارد پادشاه چوگان و گوی را گرفت و با اصرارنش که همبازی چوگان بازی او بودند مشغول بازی شد بازی ادامه یافت و شاه ضربه‌ای محکمی به گوی زد و مرتبا با سرعت اس می‌تاخت و به بازی ادامه میداد داد به طوری که پس از مدتی توغان بازی سراسر بدنش از عرقیس شد و دارویی که در دسته ی توغان جای داده شده بود بر گرما و حرارت شروع به اثر بخشیدن کرد و همانطور که پزشک گفته بود شاه پس از پایان بازی به قصد بازگشت وارد گرما شد و بدن خود را شستشو داد و آنچورا که پزشک گفته بود یک خواهییک انجام داد صبح روز بعد وقتی پادشاه از خواب بیدار شد و خود را در آینه نگاه کرد، هیچ گونه اثری از آن همه لکی های سفید در صورت خود ندید. و چون به گرما برد، در تمام بدنش هم حتی یک لکی سفید رنگ هم وجود نداشت و هیچ گونه ناراحتی و رنجوری هم در خود حس نمی کرد شاه از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید با شادی و خوشحالی لباس پوشید و به تالار عمومی قصر وارد شد و در آنجا بر تخت نشست. تمام درباریان و اعیان مملکت که حضور داشتند او را دیدند. همه با شوق و هیجان بسیار به بارگاه شاه آمده بودند تا نتیجه دارو و درمان پزشک دوبان را ببینند. وقتی همه بزرگان و وزرا شاه را صحیح و سالم دیدند، از حیرت و شادی دهانشان بازمان و هر کدام مراتب شادی خود را آشکار کردند. پزشک دوبان وارد بارگاه شد و به نشانه احترام زمین را بوسید و سپس به شاه تعظیم کرد. شاه در حضور همه بزرگان شهر او را نزد خود فراخواند و از او خواست که در کنارش بنشیند. او را آفرین گفت و از او سپاسگزاری کرد و گفت: ای بزرگان مملکت، بدانید که این پزشک دانشمند بیماری مرا تشخیص داد و یک روز درمان نمود. شاه در آن روز جشن بزرگی برپا کرد و از همه درباریان و بزرگان پذیراهی به عمل آورد و, و پزشک را در کنار خود نشانید و بهترین ها را به او داد و از او شخصم پذیرایی کرد همه ی کسانی که در این ججه حاضر بودند پی برند بودن که به زشت دوبان مورد توجه و احترام مخصوص پادشاه است. سخن شهرسا که به اینجا رسید آرام گرفت زیرا سپده صبح رفته رفته نمایان می jet audio